خب در این درس میاد ما معاملت معامله این اند تسقیل اون کلماتی که همون معاملهی باشون میشد که با سلاسی میشد هنگام تسقیل کردن این چرا که همان بار خوردی رو با آنها داریم هنگام تسقیل که با سلاسی داشتیم چی نوع کلماتی هستن میگه وردتون تسقیلش میشه وردتون و ریدتون برواد فوئیل قرفتون و قربا قریبا نعما نعیما سحرا سحیرا حمرا حمیرا وردتون تایتنید داشت قربا علیف مقصوره داره صحرا علیف ممدوده داره اثمان عصیمان از شان عصیشان این الف و داره افراس بر وزن اسال هست جمع مکسر هست تصغیرش میشه اوفراس اصوال هم میشه پس این چهار نوع کلمه یعنی اونی که آخرش تای تنیس داره علف مقصوره داره الف ممدوده داره الف زائدتان داره و بر وزن افال هستند اینارو رو میگه تصغیرشون بر وزن فوئیل هست مثل سلاسی تسغیر وسته می شوند القاعده 28 قاعده کتاب یوسف غارو تسغیر تلافی می گه تسغیر می شود همانطور که سلافی تسغیر می کل اسم سلافی الاصول هر اسمی که حرفای اصلیش تا هستند هر اسمی که حرفای اصلیش شیستند تا هستند خاتم به تاء تعنیف که با تاء ختم شده باشد مانند وردتون که میشه وریدتون او الفه المقصوره یا با الف مقصوره ختم شده مانند قربا قریبه او الممدودتی یا با الف ممدوده پایانی یافته مانند صحرا سحیر او الالف و النون الزائدتين یا با الف و نون زائدتان تموم شده مانند اثمان و سیمان اتشان و تیشان اوکان جمع تکسیرن علا وزن افعال یا جمع مکسر بر وزن افعال بشه مانند افراس و اطفال که اسم تصریفی میشه افراس و اطیفال خب یه نقطه دیگه میخواد میگه بگه فلا یقصرو فیه ما بعد یا التصییر میگه اینها بعد از یا التصییر کسر داده نمیشوند مثل رباعی مثل فوعاین بل یا بقا علی اصلیه مفتوحن بلکه بر اصلش فتحدار باقی میمونند. چه شما نقت نقید؟ اوفی راس بعد از یا بعد از یا میبینیم که حرف فتحه داره کسره نگرفته فال اوفی مان غوری فه خیلی یا میره دو فکستن بله پس بعد از یای تصغیر حرف بعدی کسره نمیگیرد، بلکه بر اصلش فتدار باقی میماند برویم اون کلماتی رو که باشون معامله رباعی کرده می شود